پرستان و... رو خوبم چهار تا پرستان چهار کش در حق خوب پسر نه پسر سلامت باشه انشاءالله خوب چیه؟ چه شاپس هایی برمه آنی باشه. نیست خوب باشه. یک شور دو عذاب که واز اینکه باشه کرده اصلا من آدم مذهبینه. نمکن ادعا بکنم. این عوازان خونم ارقم از صدی رو نیست فکرم مثلا چون خونمون رایت شدن تا مهم اومد کنمون سه رفته های رو بات رایت ما رایت نمی کنم چند وارش گفت مثلا رایت نمی کنم بازده همه از را که گذنی که هم پیدی نکرد اگه مجرور شده میگه خدا سب باچکان های بازشنس بعد از همه کارها بود چند جا چند مفران استواره بکنیست سه روزان بکنیم هفته ای <تسجنبين> <دلوقتي>. <تسجنبين> خب تو سلز دیگه چی باید بیار هدف رو گفتیم. بعد از هدف گذاری سلز بعد این چهار تا پازل چی بشه. 4 تا پازل شما چه از 3 تا 4 تا. کنید. این سلز پلانت شما بعد تا موضوع رو کاملا باز می‌کنید بنویسید. یاد برنامه کوچتون. <تص> راهکارهای اینکه تعداد مشتریاتون زیاد بشه تعداد مشتریان زیاد میگون مثلا هم هم دوستان و هم مثلا گند دو تا مشتری خوب دارشون رو بذارد دفاع بود کدوم بود؟ جهاد. جهاد باید ریسک رو بدن که ناگه ها مثلا یک حس بشه باید حتما با, خدا با قول خودم تو آب نمک حتما یه چندگه خوابونده باشی یه داشته باشه. یا به فکر افزایش تعداد مشتریان از تعدادی باید برنامه چه کنیم؟ با SMS فنل با SMS با روزنامه با تبلیغات با چه کاری میتونیم با سایت این کار بیشتر بکنم تعداد مشتری می اینجا فنان ما به کیفیت نگاه نمی کنیم واقعا کمیت تعداد مشتری زیاد می شود کانتک زیاد میشه. شود تکلیسه که الان می خواهم به مراجعات افصایش پیدا مراجعات افصایش پیدا بکنم کسایی که شما رو میشتن پیدا بکنم مثلا هر چیزی که هست Facebookه هر چیزی که روش ها و متود های حفظ مشتریان وجود برای این الانتون باید چه ترهایی دارید سرسی نقاط بهشون بدید مهمانی ما باید <تصفح> پس روش ها و متوت و تکنیک که مشتری موجودتون حفظ بشن مرمومهاشو باید اینجا بنویسیم یک هدیه، دو مهمانی سه جایزه به بیترین. چهار، حمایش پنج، نصایی بعد من اینا را گفتم باید کنارش شما آنالیز حده داشته باشید چقدر میداره برای این صرف بکنید بوجهی که برای کاران صرف بکنید ای کارا بکنی؟ پس این هم بودایی سیارت اول را که حس بکنیم حالا اضافه کردن پیشکش. همونی که هست و الان نگردار از دستت نهره اضافهاش با قول خودم بیش گرش ما طرف هنوز اون مشتریان اولانشون نمیتونه راضی نگرده داره فکر افزایش مشتری با دومی چیه؟ چیمه؟ مهمانی مهمانی بعد جایزه خواهی؟ بله بله مهمانی بهترین ها. بهترین ها جایزه بهترین ها همایه هایش سمینا <تصفح> چیزهایی که اونا که الان هستن ها حفظ بکنیم تربیه که تولد اصال کادی تولد تربیه تولد چیزایی که رفت اونا که هستن رو حفظ بکنید باشو افراد برای کنید چون اونا ها به زحمت به شما اعتماد کردن اعتماد مشاهدن کار خیلی واحتی نیست کسی دارید راحت به شما اعتماد بکنید خیلی سخت اون به زحمت همان به شما اعتماد کرد و حتما باید حفظش بکنید سه و این چیز دیگه باید, باید تیر سیست باشه در فروش بیشتر به همین مشتری‌ها مثلا برنامه فروش برنامه برنامه فروش بیشتر به اینها مشتری موجود موجود ما <تصفيق> کم هستن ما اکثر کسایی که مییم برای مشاوره میگیم مثلا مشکلی ندارن بعد بهشون میگیم واشو کار بکن یا پولی در بیاری اونها رو صیغ می‌کنیم، حفظ می‌کنیم، نیت‌بندی بکنیم کنیم، برنامه بشون بدیم، جلسه بذاریم همون اونایی که آن هستن. میگیم بانک اطلاعات مشتری‌تون بیارید. میکنیم، اونها صیغ کردن کار کردن. برنامه فروش بیشتر به هم مشتری موجود باید توی چه سیاست‌نامه‌ای باشه؟ چگاه میتونیم بکنیم؟ جلسه باشون بذاریم، هدف بذاریم. جلسه باشون بذاریم، هدف تو قیمت ها رو پایین براشون بذاریم. تخفیف به خاطر مشتری قدیمی بهشون بدیم رامه های پستی برشون آماده بکنیم درخواست شراکت بدیم بهشون حالا مشتری قدیمی ته چه سر یا ته یه سامندار من شد یه سامندار من شد <تصفيق> <تصفيق> بگه من شد این سال پیش یادم شرکتی بودم از سال گذاشت اومد گفت ما فقط مفهند علم تو استفاد بکنیم بلی سامدار نموشیم از سال میگم مشابه قدیمیش بودم ده درصد از سام شرکت شداد به من به جشت مشاورشون جای گیر میکنند، جای اتفاق میوفته، میرم آموزش میدن علم من ثروت کارتون ای اونا، با هم شده یک شریک برای اینکه ما رو نسلم تو سیستمش نشته با شکرس بکنیم در خواست شرکت، دادن شرکت به مشتری قدیمی تو 5 سال داریم او ما کار میکنیم می خواهم شرکت هم و صحامی عام بکنم بهت صحام بدم از شرکت کنم برامی فروشت به مشتری موجود اصلا فرض کنی خواه خانمارشون بس <تصح> چیزی که باید توی حاضل حاضر فروش ما می‌گیم یا محفظت تو منطقه فروش یا تو صرفت‌ان‌تون باید باشه فروش ارزش بیشتر فروش ارزش بیشتر به مشتریت این یک مزید رهابتی پرنامه‌های مزید رهابتی فروشت باید مشخص بشه مثلا مثلا حمل رایگان به مشتریان همده رایگان به مشتریان یا مشکلی یا بسته‌بندی خاص. احترام. احترام مهم فرد ممکنه. افصال مثلا بسته های آموزشی. مشایی قدیم میتونه. سمینار بخواه دید. دراتشون بخواهی بباده. سمینار جایی هست. با هم اتوار درمیل کرداشته باشه ارزش ها منظور اینجال مزید رو بارتی کارت مثلا یکی از دوستان را کار قشنگی کرده بود یه ویده های رام که رامسر چون چون که مثلا بیری یه ویده ها رامسر میگیری مثلا شب بایدتون صد تامان حساب کنم اینا معلولا سه ماه، چهار ماه هست سال پرم، بقیه سال خالیم اصلا شما الان به شما شاید اون ویدئا رو با ویستوان هم بکرد یه ای ویدئا ایشیم مثلا باقیم شده رفتم همین کنار که اون یه خیلی سهل شب اینجایی جای, جای استراحت بکنم و از صبح مثلا جایی ها بکنم برم بکنم مثلا یادم اه... که انزری یه بار ما هم چکتا دارم فست زنستون بود. فست خیلی مسافرگی رو گفت فست با مسافرگی هزار تا همه سال گذشته این ده هزار تا همه طرف یه شب یه شب کامل اونجا استاره کردیم بیدیم. خب این ها چی کامل کنن؟ میاد به این طرف میگه که مثال دارم میگم مثال عملی و اجرای روتی میگم مثلا یه ویلا سه ماه در سال پره تو سه ماه در سال شما شبیه صد تومن در میگیریم نه ماه سال کاسبی خلابه شما شما شبیه ده هزار تا همه میگیریم این سه ماه همه همه همه همه هم سه و شش و شش و سه تن شنبه نه و سه و دو و دو و سه و سه, سه و به ده می‌نویم در سال و 10 میلیون در یک سال چون یه ویلا کاملا اونجا در اختیار شده باشه. مثلا ببینید ویلا واقعا 60 میلیون ویلا واقعا مثلا 100 میلیون. و 10 میلیونتون می یه ویلا اونجا شب و روز باشه همیشهن برای خودته. حالا این 10 رو یه ویلا گرفته بود. 10 میلیون اجاره کامل. اما پیشم بشه رو پاستو تیکی از همون شرکاون بود یا هم تعریف می‌کنم. یکی از اون شرکای ویلا یکی اون او صاحب بعد به همه مورد این یعنی عرض شده. به مشتریان قدیمیش زمان داده بکنه من یه ویلای اونجا دارم. مال خودمه. زمان به بدهی که با خانواده میری اونجا. یک پاہن داده بود. به کارمنداشت. به مشتریانش. یک پاہن خوب بهش میشناده بود. با این پاہن خوب حالی شد. تونستو ارزشی رو یک فروش خیلی خوب داشته باشه. در آنه زمان داده بود. کارت داده بود. به مشت این ویلای من مثلا تا تاریخ فلان تا فلان خالیه میتونی به خانه تشریف اگر میتونی الان بنا رو اعلام کن اگر نکنی کسی دیگه ای بدم میدونی به دوست به همکار شما یه پهند داری این ارزشی داری به دیگران داری در این ارزش رو ندهام کن <تصفح> میدیم بروش ارزش های بیشتر یا مثلا استخرا هم اینطور استخرا بیژگی دارم میتونی شما خودشون بکنی مثلا استخریل خصوصی، مثلا خصوصی هستش که خانوادگیه، آره فامیلی پوله. بچینون با هم صحبت بکنید، اجاره بکنید بهشون دربار. یا حتی مثلا پرواز، الان پروازا شدن. پروازی درینه نودی، مثلا من کارمندان کارمندم تاریخ می‌کردم، ما با سی هزار تومن رفتم مشهد. من چرا واسه سفر ولی سایت هزینه ناراحت تو گفتن از که توی بازار هم هست. اپلیکیشن. که بازار جایه نواردی رو هم تو سایت هستن که آره واقعا هم هست. اینجوری مثلا بیان ما کنیم. با آدمی داشتم شما سرچ کنه پیدا شما مثلا تا سی تومن بتونی برای سفر باشی. مثلا توی مشهد میتونیم کارو بکنیم. مشهد مثلا شما خونه خیلی خوبی که در واقعه دیدم خیلی این کار رو اجاره کردم باید منور خیلی خوب یا تو ماشین همینطور مثلا من داره ون اجاره کردیم مثلا به این ونه روز چقدر برداری بخوام همه سال در اختیار من باشه هم با این بنه کار خود انجام میده هم میره تو فرودگاه مهنه های میاره شیک و شکل با کلاس کار دیگرش هم با این انجام میده این و مشتن روش که لذت برن کیف بکنه این بس لذت لذب هست پس این هم تو سی باشه تو سی آنان تکنیک‌های باعث منست سازی و بخادر آدم هاست این انسان ایک زنجی می‌داره انسان ایک زنجی وفاداری بیاره این ها بلست داری کل اون انسان رو بلست داره اینو آقای یون می‌گه که همانش کنست استیار شما چیما قیلید وفاداری آدم ها رو بلست بیاری کل اون آدم رو بلست داره چه کاره اکه بفادار شد؟ بفادارش بکنید همونم پولش تنبالتون میشه زندگی تنبالتون میشه مثلا من یکی ای از خیصفه خوب خود من به نظر من دارم اینه ای ای که خیلی کم تدریس میکنم بیشتر ایشتر به کار ایجا تا من اطلاع پنج هم بیجه ماه بگه تدریسم برای کار ایجایی با, با خیلی از با خیلی از آلم هایی کلیدار آلم که کار را خیلید بایش میدرسه اصلا دو شنبه بود افتون باید باید باید کاره موزیکلی کنیم رو سه تا مغازه بزرگ توی لارزار داره یکی ملک چل میلیار توانیی تا یک زفرانه یکی درده این دهیه معنفلیت شد به خوروش صحبه کردم فهمیدم یه کاری کرده کارمنداش بیرون از لارزار مغازه دارم یکی باز کارمند مغازه را اجاره داده خودش دن اونجا کار بکنه ولی باز کارمند این نوع هست عجیب یه دیگر جیگ برای شما باشید باز بید و باید تو کار بکنید فقط رو بحث خوش اجتماعی و بحث و در استازی کار میکن کرده اصلا کرده خونوالدهش اصلا میگن نه تو این بس اون محبت هست، بس اون عرضش هست وفاداری اون دلیگه خود این داشتن. و اصلا فهم شعوره، فهم, فهم فروشه شعور فروشه که این تصف اونجا انتقال بده نه ترس نگره نشده نشاگه اصلا میگه مودی فروش هم بعض ما هم ما ده می‌می‌می‌توانم در بیاره من برام چیزی نیست یعنی روش جونت در بیاریم روش جونت، به فروش در بیاریم ما ما کارمون به این صورت انجام داریم که برای هر کاری یه بوسفنگ گرد می‌می‌کنیم به کارگرده خودم میروه این برس شده که مثلا به بهتران بهشون میشه ولی یادشون میفته که این کار تموم میشه. ما یه گذفندی قرمونی میشه به تعداد بچه ها مثلا قابل کشت توجهی ساده بهشون باشه. داده میشه آره شان ازش ریاضیش مثلا زیاد نباشه ولی باعث این رفاداری هست روش ساده هست بعضی ما هم فرموله میگه هم ساده ترین فرمول ها و ساده ترین روش ها بیشترین اثر بخش رو دارم اثر بخش رو دارم ساده داشته قشنگ دارم خوش خورمونید با همین ارتباطی که خیلی ساده این با این آقا داره با هم مدیر فروشش داره نه فروش میان داره میان استفادهش میکنم هفته اول شام با خانواده دعوتش میکنم خونم میان هفته دوم من میرم خونهشون که سفتم کاری انقدر باش رو حذفش. ان ساده باش باشی. می هفته تو من میرم خونه هفته اول شما استفاده شده یه جای می خونه رئیسه. هفته دوم میاد شام نشون چقدر میشه. خیلی تمام شد. می من انگار خونش میاد. کلید ویلا رو دادم دست همین 35 تا کارمند داره. کلید ویلا همه همه داره. بعد من برنامه رو منظم کنم و عطف من تنظیم بکنم. باید کسی بینیم مال خورید، انگار مال رئیس، انگار مال خودته اونجا نیمونی بری برخورد مغاز رو بزنیم، باید درد مال. یه هرچی من به دسته بردم، با دیگران شریک کردم یعنی موقعاً تو ارتباطا، چیزهای یاد میگیره که من توی یه حساب دانشگاه هم یاد نگیده کسی نهای ما نگفت کرده م? که خواب بخون، حفظ خون خدا شما من فقط باقدر مدرک من داش گفتن شما من دانشگاه همون بود کلاس استاد تمام میشهد سوار موتور تو خیابانو بیریتر بود منتصم که با این علم تقنیم با این چایی بخوری نسگاهو بخوری تو دانشگاه چهر بزن اصلا نمائنه نبودم بودم فقط اگه مقدره من نگاه رو کنیم همشت پایین همین مقدره رو کنیم همین ها در حدی که پاس بکنم بودی که بیشترم کار رو همین عرزش چیزه یاد می گرفتم که توی دانشقا واقعا من, من یاد می‌بینم تئوری خوب داره، تئوری خیلی خوب. تئوری من رو قوی کرد ولی اجرای من رو حالی نکرد آیا از همین که باید که دفع یا ارزن من شما که میگه هر کدوم از پرسنل من چه دختر چه آقا بخوان ازدواج بخونم ماشین من ماشنرزشون از قبلن بهشون گفنم شما دیگه تا خاطره زندگی قبلش هم علطی غیر از اینا شما شب عروسی لوکس ترین باشی زندگی داشته باشی همش با عکس آلمود باشه میگه زنت میذاره رو جای دیگه کار کنه بری جای دیگه خودش قسم میخورم ویدیو اینم مثلا راحتن جای دیگه کار کردم. بله مثلا آزادشون میذارم میگم هر چه دوست داری برو هر احساس کردن بیشتر به بیشتر در میاری. برو کارما یه رفته سه دیگه دو ماه دیگه برگشتیم چه ماه دیگه برگشتیم یه یک سال دیگه دو برگشتیم شد خودم چون یه یه با ماشین هاجیزی اون پاهم بایین ماشین رو با من باغ عرضی شده که این کسی میزونه یه همچین کاری انجام بوده من این قلعه رو به سلام اینکه ردست بودن این از تو بودنمون کیلی دل رفع داریم کیلی رفع داریم این را با خاطر یکیم که شون ها رو وابسته خود بید. دل بسته خود بید. چرا شما از مادرت جدا نمیشه ازدواج هم میکنیم مثلا الان شما قدید کنیم شما مادرت از مادرت بیکر بزرگ کردی، سن بزرگ کرد ولی باز میری پاشا میگوشی، دستشان میگوشی چرا؟ چون بابسته کرده شما رو به خودش، دل بستگی ایجا کرده شما. نمیتونی، حتی اصلا هستان هر جوری میخوایی مادر رو حس بکنی، نمیتونی اصلا نمیتونی حسش بکنی، تو دلت تو غربتت، تو وجودت سنت زیاد بشه، هر کاری کنی، این نه اون قلع، اون کیلید وفادری شما رو به دست رو. کاری شما کار آخر اخر اونم این میشه اینم مجملان پاسکو حالا میتونیم با اینکه اون ارزش های کمیتن مشتریان بدم کار ساده است فرموله ساده است ما پیچیدگی میگه ما مثلا این دستور ریاضی بوده میدونم من که از هرشتن ریاضی بوده مثلا آره مثلا انتگرال براتون میدادن انتگرال مثلا ان حد این بالا ان حد این پایین مصاری چرا حل شد بعد میگی که با ساده ترین روش قابل حل بود این یک دو 2 مثلا ولی اینو با این می‌زدی اینا هست حذف می‌کردین می که و این که همش یه دونه هست این هم همش اینا ساده دو ساده ترین نشه عمونه پیچیده نمواد روش ساده اینا هم همین فرمول‌های فروشنی‌های عادی فرمول‌های ارزش فرمول افزا مشون عادی ساده است ما دنبال پیچیدگی نمیریم بس سادگی برسیم یعنی زیاده سادگی زیاده اینو هم خیلی ساده است ما دنبال پیش بیگه است مثلا روی آب و خوردن موزه کرد ده فقط باید راحت باشی ریلکس باشی، این ریلکسه به مرور بدسته محارت این را بدسته خلوش عرضشی بیشتر که مشتری هم خیلی مهمه این خواهد این باید که عرض نخواهد من شما پلانت باشیم اگر سرویس خوب بدی می کنفت اگر سرویس خوب بدید آدم ها میان سراغتی حتی اگر کشت به باز به هم سرویس بدلی، مثلا اگر سرویس ضعیف دادی، آدم ها ره تنز بیشه نگران رو سعی سرکن در مورد سرویس خوب باشه سرویس خوب بده آدم اومیان ارزش بیشتر بده آدم اومیان سراخت مشکلی ها هر جایی باشن دور میزن و دور میان می سراختن ما دیدیم اینه آره. سرویس خوب ساده، زیبا، بده مشتری را میره رو کل تهران میگرده آخرش ما سر شد آخرش ما سر آر شد این دیگه من یارم مثلا سه سال بیش تحریز رفتم توی کمپانی خیلی بزرگ بایی پرزنتیشن شرطم گفتم کارم را گفتم من با این روش کنم با این روش قیمت هم اینه قیمت هم قیمت سری سو قیمت باید. دو سال رفتم همه را اطهان کردن، هنی نفر را بردن. حتی ایک از آلمانی مشهور این در من رویت را که بردن نکیشی میکنم، دوباره مایده میشه خودم دوباره برگشتن، چون سرویس که من قرار را بدم، سرویس خوبی بود سرویس خوبی بود دوباره برگشتن میشه بودم، آنم اصلا سه سال بیدیم باشم همون هدف با هم تاییم میکنی که به این نقطه خواهم رسیم بله، بله بله که <تصفيق> هم درگی بشین مهم خیلی اصلا نسخه نمیست خوبیم هم تو اجرای نسخه بیان نسخه بیان نسخه را می دو بروه هرکوی دوست های باقی شما درگیر یک نسخه بشید ارزش کن خب نها کنید این همین مارتین پرنی شما داری آماده می کنی این همین باید یک سیلسپرن آماده کنی سیلسپرن این همین باید سیلس شما سیلسپرن آماده کنی این هم ر سیلز پلان ها چون اکسلی من اکسلی بزون میدم. سیلز پلان در آخر خیلی موقع مثل این 20 صفحه نیست، ده صفحه نیست، یک صفحه است. دقت کنید ما مارکتینگ پلان رو به میگم مارکتینگ پلان برایم 15 صفحه بیار سیلز پلان برایم یک صفحه بیاد. سیلز پلان بر ساده ترین، کوتاه ترین روش رساندن شما به اون فروش باشه. تو یک صفحه خلاصه، تو نیم صفحه، تو دو, دو تا خط و چهار تا خط. تو پنج تا خرد. سیدپند، طولای نواده شد. ساده است. مثلا سیدپند یک صفحه نوشته میشه. هفته آینده فروش یک میلیون تومنی بعد مشخص میکنیم با چه مشتری؟ مثلا با مشتری آقای مرسوری با چه امکاناتی جلسه حضوری در تیلی کنی، هفته، هفته هفته هدف، مشتری، امکان قرار فرار داد این سابه است توضیحات زیرش موقع این موقع این مدل که ما داشته باشید این بالا نها کنید، باید رو باشید، اون رو تو مردم تعین بازاره هم که ما تیگه هم دیگه بازارها روحات و بازاره مشخص دیگه شما با این اطلاعات این خط تا آخر رو می‌مینید با این اطلاعات این خط تا آخر رو می‌مینیشه تصیب دن بناهی تنبیقات، و تحتیل فروش ساختار توزی، سازمان فروش، شبکه پرخش، روحات و بازار رو گرفته می‌شه بعد یک کشی می‌فروش می‌دهی همی کشی می‌گوشه بهترین فروشنده کسانی کسان که sales sf sales forecasting nc sales forecasting nc پیش بینی پیش بینی پیش بینی فروش, پیش بینی فروش خوب بده من مثلا می خوام فروشنده رو تمام بکنم چه مونتاژ می میکنم میگم فکر کنید ما چقدر بفروشیم مثلا 5 بعد اون ماه نگاه میکنم به هدفش چقدر این پیش بینیش ها میگم ماه رضا اگر پیش بینی خیلی پرت و پلا باشه می فروشنده نیست پیش مییاش خوب از آب در مییم تا فروشنده خوبی است بعد از اون شما سرس پوکنگ میدی برک sales میدی تین میکنیم فروش پیش فروش رو مشخص میکن طراحی منطهبندی بازار و هدف منطقه بندی فروش هم انجام میید یه یک میلیون رو با چه منطقه با چه, چه مشتری با چه امکاناتی بعد برای اون باید شما سازان فروش احه کنیم ساختار فروش تقه کنید شما دو نفر این کارم شما سه نفر این کارم مشخص که به هر چی بدهید فقط فرند عملیتو تر راهی امکانات تر می‌کنی فرند عملیتی آرایش سر رو مویت تر فروش تامان می‌کنی تولد تامان می‌کنی آماده‌ی تامان می‌کنی تمد هفته دو ما که یک کانه فروش داشتم فرپون آقا تولید، آقای انبار، آقای عملیات، آقای باربری. همه چیز همه همه یا حبیبی یا نمار فروش داشتم نیروهای فروش اینا توی سیسپلنت رو می آقا باز هم خیلی ساده و کوتاه هست عملیاتیه خیلی ساده و کتا و آیا نیروی اضافه می حقوق دستماز، جوان خدمت، پرسانت با چه حدث من اون مزید رو دام برسانم ایجاده انگیزه، برای تیم فروش به تیم فروش من چی بدم که کار بدم چه بردهی بدم، چه برانه آموزش باید بشنو بدم اون تیم رو هدایت بکنم اون بعد اون عرضوی عمل کرد و فروش میشه و در نهایت اون, اون سی اسپمه نهایی داده میشه سی اسپم بکنم اجرای عملی Cool این ان فایلی هست کنم نشن TotalSate اونجا بهتون دادم هستی که دادم خدمت هستی که خدمتی که کاملا و این کل مدلشه اگر ها توانید مارکتم ما خیلی دارم طولانی گفتیم این باید آماده سیست پلند توی یک سفر این سفر رو اوگو میزهد جلو سیست پلند تو میده سیست پلند، مارکن پلند، ما حتی چند وقت یک بار تیجا میشه؟ شش ماه یا نه؟ نیستی ماه ولی سیست پلند اینو ساعت داده میشه انقدر عملیاتی مارکن جلو یه موقع سیست اختزایی، زمانیه زمانی، یعنی زمانی. یک ساعت کن شما یک سیست پلند بینید یک روز ممکن شما سرسنامی. یوا آنی, آنی میدی. مثلا من فروشگاه دارم، مغازه دارم، خب؟ شما این داخل فروشگاه من همون آنی من سرسنامی می‌دم این خانم از مغازه من من بعد مثلا یک جنس 500 هزار تومان داده نیست. اوکی میگی، شما توضیحات داره میشه، امکانات داده میشه، نوشار داده میشه، اجاق داده میشه. این احتمال بررسی میشه. آدمی که بتونهش رو پریزمت کنن و معرف کنم یه باش سواره انجام کنن و براما موچه پس اگر تا بتونه این کان ازم متقاید کنیم از هم پوزن ازارتوان بکنیم ازارتوان بکنیم های نیست دو دقیقه یک بار اون یه سی کنم ما از این بازیات فروشگاه ها هایپر خیلی انجام میدیم خیلی یکی از اصلا فاضحی پای که آنی اکال انجام میدین آنی همینج سس پلان سریع اجرا میشه حالا یه لاست یه لحظه میسن خوشگاه شروعه ناگهان پشت میکروفون اعلام میکنیم که کسانی که تا نیم ساعت اخیر تا نیم فرد ساعت مانده به ساعت مثلا 9 شرکت هزار تا خرید داشته باشم پی سبد یه جایزه نیم روزه که داده میشه حسابمون توی هایپر ایت مثلا میان دیگه داخل 300 یوزر نص النهارده داخل حساب میکنی نار دیگه مثلا تو دورینا نگاه کنیم، 500 مفار داخل فروشگان 500 تا هر کنوان یه 200 تا هم بیشه چه میشه؟ 500 تا 200 تا هم؟ یه میگیار ها ها ها میگیار یه میگیار شون هست هم؟ 100 میلیون ملیون تا هم 100 ملیون تا هم بهش میگم 100 ملیون تا هم 10% سود من 10 ملیون تا هم ابنه را 1 ملیون تا هم پدای تا اعلام بکنید حساب دیتا نیمساعت و آینده صد دیمیست میدیم. دیمیست را خیلید میدیم. آنی اعلام میشه. فروش انجام میشه. سریع نفر اعلام میشه. جایزه جایزم باشه. این که همه دیمیست دات با چونه؟ نیا گیرم نیگرم نیگرم اصلا میگرم. متوسطیق بسران بین مطائما دادم میگم که 100 تا 200 هزار تومان حساب نشه ها. 100 تا 250 میشه 20 میلیون. هر بسم الله شما تحسوت حساب می‌کنین مثلا رو به سکه یه میدی. جایزه میدین. 70 ها اینقدر میدیش. کامل این رو باشه هم این جستجوه اینکه اینطوری داشتنم سیاری نخواستم اما یه گفته بود که من اینه. یه باری که همه دارن انجامش کرده خسیر که که این میست من میرانم. گزینه کسی که از من باعتمی مزمی. مزمی باعتمی. خب، من یه خواهش از این نورم، یه فرصت میدیم توانی که محکومش را بزنید، در اون محکومت تارید، یکی سطحه یک بزنید، بزنید خیلی ساده ها رو پیاده پیدا بکنید، پرزید، نمان بایان باشد میبذارم وزور بدید، یه محکومتی بهتر حالا، تا برای کسر آقا به شادین بازارگردی منم خالص ها با خود خانم بگیرید با خود خانم بگیرید نمیهونه اونم آتیچتنا اونم جوتخانه یوزن شما کی داشتون باشه اونم اون طور یه جای راست یه جای راست نه اون فروش چه چون تا به این حد رسید فروش شما وسیع خواهد که بیشنی و دام گوجان ناده سابان فروش هم قابل خبرونه یک صفحه پوزی بهید امکانات برمان آموزش هدف فروشنده ها برسه همین جدوان برسه همین جدوان این هدف خوزایی رو انجام بدید که با این مثلاً مثلا میگرم تا گنم و با چه هدفی؟ چجری هدف خوزایی رو مخراقص کنید؟ چجری تقسیم مندی میکنید؟ در هفته چقدر میشه؟ در ماه چقدر؟ مثلا اونجا مدیسید اون ریالی که تو ما در بود دو جزیاتش رو کنیم. با این رو با این آموزش por su negociación سلام. سلام. آرسنامیش. از ماشین <تصفح> سال. سال. سال. از سکون سلام سلام باشه دوای رابینی ورشومان مورده یه برای حالا یه چندی میکنیم دقیقه میشود چه کار میکنستیم. میولی مکتمن نیبرده نه. ولی در رفتن از مکتب خودشته بکنم اصلا اینکان نداره من دارم ولی خب متصدق کنم هر فون از اینکان تایز در یه هشتی سر درست وقت خودشته بودیم هم توسن همونشون چرا کامل کردی نیمیل کنم یه سری کفشش رو انجام بزنم فهمت چیزی کردم بروشم روی سر سردیز اخیر من مومدم بعدم اینیزی کردم بودم الان عملی‌تر هم هستش بیشتر به میاد بیشتر اومدیم کامل‌تر بشه مال سن نمازه چهارم چهارم برای عالیه سمان رو من ما دوستان بپرسید جشت باید توی شو بعدم بله. فرستم متشکرم ها این سایتی سایت تو همون وایبر ابلین که رو ارزش میفرستم اگر که تو پول وایبر آخرین کار چون خونه میبرم میکنم ولی براتون میارم حتما به دستانون میمارم. یکی ایمیل خودم که آنه انجام شده هست هم آخرشو آخرش رو آخرش خط تا آخری که این نسمت این رو تا آخر رو نمیسی فروش هم هم قرار اینجوی اطفاقی رو بایی ندکنند بایی ندکنند که جوازی شو چیزای خیلی کاربردی شو نمیسی اصلا بازاد میکنم بودجه فروش همون آموزش و حروق اینا بود بله، امکانات بله. قرار بود داره تیار بله. همه شما باید چی کار بکنید؟ باید من رو که دو میلیار درسته؟ این دو میلیارد درسته هلف فیزایی شده هدف چه هدف های بردارش بذارید؟ روزانه، هفتهگی، ریال به کارشناس هدف ها رو نمشخص بکنید، جدال رو نمشخص بکنید این رو بنویسید، توی دایره بنویسید روزی بایدنگر بکشم، هفته بایدنگر بکشم به هر کارشناس بایدنگر در درست ها بدم، به هر کننده باید بود درصد بدن بدم، همین نمونه هدف خوزه نشون مرموسته باشه بلون که به هر چمه ها با روش خب این یک سفر خیلی راحت یک صفحه میشه یک سفر رو امروز خیلی گنگ کلاس آره بفرمایید خب خسته نباشید این با این هدف آماده گفتی که یه 100 روز پایانی سال 93 هم به فروش خود را در شب این 150 درصد افزایش دهند. برای رسیدن به این هدف، باید روزانه 120 عدد بوشقاب شیرینی از یک تن در سه مدت پیاده سازی کنند. یعنی افزایش تولید از 50 درصد را به 150 درصد افزایش دهند. تولیدات خود را به سه درصد تحسیم کرده نقدی با درصد تخفیف فروش چکی و سفارشی در بازار عرضه کردند. <تص> برای رسیدن به این هدف چهار برنامه اصلی به شهر زیر پیشبینی شده است یک افزایش تولید به اضافه نیروی انسانی دو افزایش مستقیم فروش سه گرفتن سفارش چهار تبادل تولید با تمین کنندگان پیش می میشه با اجرای این برنامه جمعا 158 میلیون تومن سود نصیب ما کرده و هزینه های اجرای این تر نیز صد ده میلیون تومان می‌باشد، پیشبینی شده است. لذا این تر جمعاً 48 میلیون تومان، سود خالص نصیب ما گردد. آفره. دیگه سه بین منابع بین محصولات جوزی مشخص کرده. نقل کنید تا این چه رو تو این جدول ترفی امم این داشتم بهش فکر می‌کردم مثلا نیستش مثلا اینکه تبلیغات از سایر آشنایان و دوستان هم چیزی اصلا الان توصیه میشه اتفاق میفته مثلا جزء روش های تبلیغات با هزینه کم استفاده بشه هزینه هزینه‌ای نداشته باشه می یه جورای جنسمون تبلیغو انجام داده مثلا منش خواهید نشون روشتی بودیم نمارکه اینا فکر دمونه دمونه. موراقی؟ موراقی رو فکر نه دلوقه... داشتیم نمونه زدگی چند زدگی نمون رو داشتیم و شونه به نیمسید سهر یا به نیمسید چه توضیح مویرگی؟ مویرگی در آقل اینجوری انجام میشه دیگه مثلا این طول کننده هست این طول کننده این طور پندا می مرکز پخش مرکز پخش طور کنند دیگه همینطور این مرکز پخش این مرکز پخش استروا رو مثلا توی تهران این شعباتی داره توی اسلام های دیگه بابا مثلا توی اسلام های شعبه داره توی گرد توی زاهلان توی بنده داره این شعب ام شبکه‌ای فروشنده‌هایی دارند فروشنده‌هایی دارند فروشنده‌ها دارند شما این فروشنده‌ها مراجع هستن مثلا هر فروشنده‌ای 20 تا مغازه زیر نظرش باشه 20 تا مشتری 20 تا سوپرمارکت زیر نظر میره مدیریتش کنه از سری برنامش سفارش میگیره فروشنده از این میارینجا، این بیا رو مرکز پچه بندر، بندر به اینجا میگرد، این به اینجا میگیرد پول رو میگیرد، می ده اینجا پول میاد اینجا سری رفتابرگشت جنس و پول دربارند این موشن فوشۣ بگیرد، فوشۣ موجود یعنی که شما جنس که اینجا هست و به طالم تک تک به تک تک در اول مشکل میترد به اینشون میدید خیلی اصلا رو جه رو صرف این کار میکنند تا تبدیقات بکنند چون تکبیر تک می کنند مغازه ها رو در مغازه ها رو پرزنت کنند مراکز پخش هستند مثلا قاسم مثال میگن قاسم قاسمیران, پخش. قاسمیران. قاسمیران. <میران> یا پخش سراسره که مولا شیر نسله یه سری شکلت ها خودشون پخش دارند مثل زرماکار هم مواد غذایی این بیشتر مرسوم. بسیارم که شکلت های پخش هستن از همین طولکانده ها میگنه. مثلا به پخش. هم دارو پخش میکنن و غذا. منظور دارو و غذا هم شکلت پخش دارویی هم ناوده غذایی. این مثلا با صد تا کننده قرارداد داره. از این طولکانده ها ده درصد، 15 درصد، هفت درصد پول میگیره، پرسانت میگیره که جنساش رو توضیح میکنه. از 90 تا سه درصد هزینه اینجا هست. تغییر سو به خودشون. مرکز پخش هم این که اینقدر میان به درش کار میکنن ماشین دارن، امکانات دارن. چرا شما جنس تو ویدیو پخش، پخش مودگی که خودمون چرا من کار انجام میدم؟ بهش از به نظر من طور طنا هستن باید جنس رو بده به مرکز پخش، اونها برام مودگی توضیح بکنن به زمان خودش تغفت باشه اصلا درگیر خودش تولید کنند است بگیم از زمان همون شو زارم زمان همون شو تولید به اداره های خلقانه رو نهابری با اون اینکه درگیر دریافت پول نمیشن ریسکا کم میکنه بگیم من بلا نرکونی گیرم و باید میگم باید هر کار دوسته باشه چون درگیر این همه دارو خونه درگیر این ه که جنس داده، پول رو خاطر بده. ولی کاهش ریسک این کارو میکنن ریسک مالی رو کم میکنن از خودش. مثلا ارگسال. تجربیات هست که واقعاً این توی تهران و ایران خیلی خوب کار داره می‌کنه. یکی از چیزهای خاص ماست. خیلی واقعاً خود داره میکنیم. کار بله. یا اینکه شکل خودش طرحش داره. مثلا زرمکاران هم ترابری داره هم طرح داره هم طوری. هم سیرو داره. مثلا زرمکار نمی‌تاره. سیلو بوده. بعد زده تو کار مکارانی. الان میدونه کنه سیلو داره، سیلو یا که آرد داره،, داره. خودش میزنه تو خط مکارانی. یک خط مکارانی، یک خطولد هم برای خودش راه میدازه. خودشو مرکز پخش شدن. مثلا شیر نسل، سراسال. آسان ایران، میمون. به پخش باید پخش فوله. یعنی همه چی هست. از تیل گرفته تا خودکار. همه چی پخش بوده. میاد که سازمان فروش طرح میکنه سازمان فروش این فور هر فروشنده 20 تا مغازه رو بره پرزنت کنه. میره پرزنت می‌کنه سفارش میگیره، جنس رو دریافت می‌کنه. حالا این که فروشنده مشخصه مثلا نگفتین یک بار میگم فروشندگی همه هست. مثلا یکی فروشنده است. یکی سفارش گیرنده است. یکی توضیح، معمول توضیح یکی راننده است، یکی هم رسوله هم ممکن همین یه نفر انجام بده، مثلا یه نفر واند داشته باشه، پروشنده باشه، سکارش بیرانی هم باشه خودش هم پیاده بشه، در باز کنه، جنس بذاره اینجا خودش هم گیرنده باشه، ممکن همین یک نفر باشه، ممکن جدا باشه مثلا بهپشت یکی راههن است فقط ماشین بیرونه سوز و دستشه می راهندگی بکنم کار دیگه بل نیستن دو نفر خیلی سوو میشیم یه نفر فروش دستتون این سوود میشینه یه نفر معمور توزیی فروشنده میره سفارش میگیره هم سفارش می گیرم فروش اندون فاکتور می برند فاکتور بشه اون یکی که معور بازیزی پیاده میشه جنس از پشت ماشین به میذاره جلو مغازه خیلی اوها توضیح هم انجام میده ولی یا مثلا بستنی می میه هم و وصول با منمور توضیح فهم میکنه منمور که میره میده بخشار نگاه میکنه په اون سفارش داده؟ چه جنسای های فروش افتا آقا فروختی وقت فروختی نر... پول نرداشت شما اون پول نرداشت میگیره اصلا در سفارش گیرنده و توضیح یکی هم تو بله اصلا میگن بله همین یه نفره. بعد ما تو فروش چند نوع فروشه نقل تا یه فروش هم توی موردی به فروش گرم فروش داق فروش سر نموان فهم میکنم چفر رو می کنم؟ چه رو کنم؟ اگه اجای از ما شنید خواهد چی؟ فروش داق چه رو فروش داق مثلا با فروش سر چفر فروش دا همون جنس سرگی همونجو پول میگیرم هم خیلی نزدیکه جنس را میده پول میگیرم میشه فروش دا هنبارش کجاست؟ هنبارش ماشینه انبار نداره دیگه ماشین رو از از این اینجا این کار هم جامعه این وانتیه درسته زیر مجموعه اینه ولی میره پیش کننده جنس تو ماشین بار میزنه مثلا, مثلا مثل کوکاکولا, مثلا شرکت کوکاک چون جنس خراب میشه شیر تولید شده باید مصرف بشه دو روز، دو سه روز نوشابه تولید شده باید مصرف بشه دوخ تولید شده باید مصرف بشه این نبشه این دا از کارخونه میگیره، میاره، سری میده، اینجا پوله رو میگیره یه فرصت انبارویی نیست چون برونت و انبار میگنده، خراب میشه آب، آب مردمی سه ماه چهار ماه بیشتر توی مغازهی بمونه اون خاصیت مهندنی شرح دست میده فروش کرم چیه؟ فروش کرم یه ذره فرانه طولانی میشه این نیاز توی انباری، این انبارشون کنه به این کار رو انجام دونه سرد دیگه. سر. نه، سرد سفارش میره، سرد میده یه سفارش میگیره آنچون گرم هفته رو دیکی همون, لحظه... همون لحظه داغ لحظه است، داغ لحظه است داخت دو روز اتفاق می‌افته. تورید تا فروش دو روز. گمم یه یک هفته اتفاق می‌افته. سر یک ماه اتفاق می‌افته. توی داغ شما تو دو روز و پولت می‌رسید. توی, توی یک هفته توی سر توی سر یک ماه. یعنی چی؟ سر مثلا نخودلوگی هم. مثلا از شما. ماکارانی. مثلا روغن. مثلا تا آره، ماسته تو بلند موقع روز اول خواستی از شما سفارش میگیریم آقا شما تو این هفته چقدر ما کارانی میخواهی بات بوشیم؟ طبعا مثلا یک کارتون بیار. این کارتون تو می می رو تو برگاه درخواستش می نمیسه. میره دفتر مرکزی. یه دفتر مرکزی. من یک سفارش گرفتم یک کارتون ماکارانی. این ویلوی اینجا اعلام میکنه. این به طور کهنده اعلام میکنه. یا نه تو همبارش هست برمان ریزه میکنه. بعد اینا دیگه مسیر ویزیت هست، تور ویزیت هست. واجای پیشتر فروشون میره که خیلی زیاد. و از هر فروشندگی یک مسیر ویزیت داره، منطقه ویزیت داره. که منطقی هم نیامده شده. دیمشه نام درستی به خواهده هم با خورمتی بزنم اینش که یا با نام هستم که زر و ساله هستم که هست یا فار با منی که هستم این کسان به آن از این بسرین درستی کار کردنه با خود معمولی این خرکتان نهاب کنیم ما بینا میگیم تور این فروشنده این منطقه داره مثلا منطقه چهارده تیتانی خامل, خامل <تصفيق> خوبه خوب. اونجا شده ببین منطقه بندی میکنه روی نقشه اول <تصفيق> من ماموریت روسیه ای، پیکاسو کازیش شد. اولین چیزی که ما داریم، با. خیلی. ماموریت از روسیه به اندیان. اوه، دیسپوت دیسپتی، کیوین اس کو کہتے ہیں ڈیٹریز چکن کامپلیٹ اینڈر اریے پہلے شونچا کامرڈش کو کمکش کرو۔ اس پارتو اون منطقه دو, منطقه سه، منطقه چهار، منطقه پنج، خب این شنبه شد اول منطقه برن نیمی مثلا یک ماه و چهار تا منطقه می‌کنم این یه منطقه یک ماهick یک ماه و چهار تا منطقه خب. هر هفت توی منطقه این برن این میره شنبه سراغ این مشعلی یک شمبه سراغ این دو شنبه سراغ اینا سه سر سرود می نو، شش شنبه سرود این هفته مشخص می کنه. یعنی ده باشه، روز روز هر روز اینا شنبه، مشخص روز روز مسیر یعنی ما مثلا یه منطقه رو حل بشش بدین. از ها منطقه چال رو می‌خوام بشش حالا می مثلا قیامندی می‌کنیم. آره تمام. دیوونه یک چمبه، دو اینجوری، سه اینجوری تو کل منطقه رو به دست بیار. کوشش کنید. حالا این کوشش دادیم منطقه تموم شد. چجوری میتونیم تو راه منطقه بعدی همینجا بمونیم یا حالا از بدتر همینجا می‌ذاریم همونجا. همینجا بمونیم. برای منطقه بعد فروشنامه بعدی. کوشش کنید. من نقدر پوشم به سه اون سه های چه بعد دیگه آه. من یه منطقه رو خوب پوشش بدید بعد برسه رو ما خوب پوشش بدید از هر ده روزه رو مشتایی سر بزنید هر در روز بیستوزی رو من که منطقه رو یه بار بردید از سرگیش کردید تا بوشه فعال من نوشتم بخونیم خب، این بیزنس، پلنی که من نوشتم آقای رضای دوستم در مورد گندم گفته بودم من دیه برنامه در مورد جوب دامی داشتم تو برابر کردیم حدود دو میلون پومصد هزار تن در کشور نیاز یک سال جوب دامی هستش خوراک دام سرمایهی معادل 18.750 میلیارد ریال نیاز داره برای این کار یه چیز عدد چهل تا شرکت تو این زمینه تو کشنا فعال هستن که اگر بخوایم تقسیم بکنیم به این شرکت ها بر شرکت حدوداً 60-60 تن در سال میرسه با توجه به اینکه همه این شرکت ها توانای مالی برای واردات این مقدار تناج رو ندارند ما در مورد شرکت خودمون پیش بینی کردیم که ما حدود 120 هزار تون در سال رو میتونیم وارد بکنیم که سرمایه حدود معادل 90 میلیارد تومان نیاز داره با توجه به بازار مصرف این کار تقریبا مشخصه و بیشتر وزارت جهاد های دامی و دامپروری و مشابهشون هستن خب نیاز به تبلیغات خاصی برای این قضیه رو از طریق ارسال نامه و پست، طریق پست، ایمیل و فعالیت تبلیغاتی جزئی این میشه اطلاع رسانی کرد برایشون. مدت زمان مورد نیاز برای هر پروژه خودن سی روز هستش برای این کار. بله. بعد از آن شما بودجه مورد نیازشو گفتم که خودن 90 میلیارد من برای هستش و درآمدی رو که حالا بسته به بازار روز و نوسان قیمتی داره. خودن بین 102 تا 110 میلیارد تومان فروش این مقدار حجم کالا پیش بینی میشه و با توجه به هزینه هایی که در خصوص بازاریابی، تبلیغات، مالیات، اطلاع رسانی، هزینه‌های دفتری و هزینه‌های پرسنلی که پیش بینی کردیم یک چیزی حدود 10 میلیارد تومان پیش بینی سود خالصی برای این پروژه در نظر گرفته میشه حالا تقسیم باید روزنه تقسیم ملی این چون سریع نوشتم بایدیم دیگه تقسیم من برای کار ما دارد به ساعتی گذشته داشتیم بیشمیدی کردیم که بیتونیم سی ست درآمد باشه نشه. سال 2020 <تصفيق> ما دین پول ورده بود 1200 تا هستن، فعالونه فعال 900 توش گفتیم. اینا هستن از این 900 تا تا زیر 5 نفر هستن که مشتری ها ما نمیتونن باشن چون کارجوی ما که میران اونجا نمیدونن برای ما درآمد آنچنانی نداره. از مجموع 600 تاشون 100 تا رقبای غیررسمی رسمی آموزش کار بیمه اجتماعی، مدیریت شریک کوشش میده میونه 500 تا تو این 500 تا گفتیم 1200 تا فرصت شغلی ما بایستی داشته باشیم 400 ساعت مشاوره بدیم 3000 تا سرویس 300. خب یک سال چجوری اینا رو انجام بدیم یه سری فعالیت‌های روتین هست که ما روزانه بایستی اگر ما کل سال 350 روز فعالیت ببینیم روزانه 5 تا فرصت شغلی کارش بکنیم یک کلیب ساعت مشاوره بدیم دو تا سرویس توی پیشبینی روش هایی ویژه برای تبدیل کنه گفتیم که حتما ما به پیل نشری شهرک تبدیل انجام بدیم برای منشیامون، همون، منشیه منشی که اون هم 1500 تا در نظر گرفتیم فرصت چغلی به ما برسند که 1200 تا شما به کارگماری داشته باشیم به دوره آموزشی یا ازمانشگری رو برگزار بکنیم مشابه گروهی بدیم در زمینه قرارداد که بینه و به طرح با اندازه سایت داشته باشیم، ارسال برنامه گروهی داشته باشیم و در نهایت هدیه بدیم. مجموع از اینا رو گفتیم تو این بخش 15 میلیون به تقی اطلاعات تا قبل از سال 6 میلیون تومن برامون هزینه داره، نیروی انسانی دو نفر به دور مدام باید دفتر کار بکنم، تبلیغات و جاری اونام 28 میلیون تومن، مجموع هزینه ما 58 میلیون تومنه که از درآمدمون 387 هم تقسیمالی روزانه داشت، هم تقسیمالی خدماتی داشت و هر روز چه خدمات چند تا تماس، چند تا برس چهار <تصفيق> تا چهارتون خیلی هایی کامشون، این حالی داشت دیگه که آمده کرده به خونه سه اتمنه شد ما آمودی کنم برموزی فیش و بگیره هدف، بازار هدف ساخت سوده هستش که سحن رقبان ماهی یک عدد قرارداد دیمانکاری برای ساخت سوده هستش و برای این کار باید از دیوار نویسی و بین راهی در مندر صنعتی صحبتی اثباده بکنند همکر ها؟ در, در اصل این تبلیخات باید نشون بدم که توی این متع شایسته شایست صادقین و استکام بدلویی هستش که مجال بطولا می دهستم من براشون. و مشکلی که دارم بروگلو این هستش که اونها قیمت های ما را می کنم پیشنام من باید یه باداستی اینجا بذارم آفرین برای هر کار صدقی می توانیم من بوده این یکی ما باید لحظت سخت مکنم انجام بازار هدف ما من هم منطقه صنعتی هستش که در این در این کار هستم در اون تراییه سازهان فروش و ساختار شبکه یه و توضیحی دی که باید من انجام کار به صورت کار روزانه کارگران می باشد سرفرس کارگران هم رو نه من ناوار کارگران رو قرد دارد در طی روز یک خودم به سر کار سر بزنم خرید های مورد نیاز فقط به دستور من انجام می کارهای تدابه فروش بایستی به صورت فیس to فیس در همجبار ملک که کار می و مالکان ارتباط هم بار کنن داشتن گروشور و سایت و فنکس الزامی می باشند داشته بیرگیر فروش بسیار کار خواهد بود استخدام یک عدد برای انجام کار تدابهات هم نیاز دارد و نظارت رسیدن به اهداف و میزان انحراف از فروشم که باید دقت کنم که در این راستا حویقت کنم و به این فروش ما یک کنم برسن خب حالی بود، حالی، تاکسی منده جزئی بکنی که برای روزت فرمان بذاریم باید باید جزئی باشه. از کلی باید باید به جزئی برید که در روز باید چند تماس بگیری، چند تا جلسه بذاریم پانیوار باید چ این مشه نه عملیات. اگه برای تبلیغاتی که مثلا خود شرکت رو در نظر میگیریم گیرین خود شرکته بعد مدیر عامل شرکت رو هدف قرار بدین یا مدیر رو بلی شرکت خودم باید همه هدف داشته باشه. نه، برای شرکتی توشترین. که می خواهیم مشتریم باشه مقابل. برای مزاکره ده ده شما که مثلا می خواهید سایت. سایت، ما رو اونجاز بود جای تبلیغات می رویدید برای مدیر به ها بعد دیگه نیاز نیست مستقیم با خود مدیر آمل چرا خیلی بزرگ بود برای مدیر آمل چون دیگه برحال یه جوری که تصمیم نهایی خود مدیر آمل همی شه می گیره در مورد سای این پروژه انقدر بزرگی حتماً شما رو مدیران متقاعد بشه باید شون دراسته مذاکره کنیم با مدیرمون این پروژه مشخص شده است که قرار انجام بخونه. این شرکت قصد افضال شطر 2000 واردات در سال دارد که برای دو در فروش فروش فروش ثابت و یک خام درصد پویسیون است. که پس این, این افزایش واردات 2024 میلیارد ریال است و باید ترسیم فروش در سه قرص خریزارتونی که برای هر قرص سه در نظر گرفته شده که علا رو در نظر گرفته شده که علا بر هر فروش خروش گنده و سال قبل باید این مدده هزارتون هم بفروشن <تصفيق> و نیاز برقراری ارتباط به خریده ها و صورت و حوضیدی و پیدیدی ها نطریق ایمیل و حوضیدی باید، تقسیمانگی باید روزانه باید دشته باشد باید روزانه، نمیشه هفتهی روزانه، ماهیانه به ماهانه، مثلا، سه ماهانه سه دو سه ولی، من کردیم خوب، شما خمیده من نیست شما؟ خانده. به خواهم همونموشید به صورتان خب من چیزی چیز رو باید این چیزی که به ترش بهترموالش آقای ها ها. اینقدر بشن با همه چیز عملیات عملیاتی باید باشیدید باید دفتر. من دفتر رو نوشتم فرکتی ها دامنه یک با تمام جوزیات این اوشک درستان عملیاتی ازجایید. یک صفحه همون جزید. همجز مشکل هستید. خب این اونان خان در من هم صحبت بکنم که درم میگه. فروشندگی کسی که میخوان فروشندگی دشند فروشندگی یک انجام که درم باز هم خواهد بکنیم. فروشندگی هم از دکتر میدونم. فروشندگی درم از دکتر میسید این پیزش چی کار می کنیم؟ باید شهرهاب می کنیم اصل درمان هست تشکیز درمان. پشک. پشک. بعد از تشکیز کار میکنه. کنیم؟ درمان هست درمان هست مثل همین اولین کارش تشکیزه درمان کارش تزویزه تشکیز چند هست که کاری پروشنبر کار پزشک چقدر ارزش داره؟ من میگم شاید 50 درصد هم میتونه ارزش داشته باشه. درصد. 70 درصد کار یک پزشک، تشخیص سی درصدش در واقع مشکوک تجهیزه. یک پزشک خوب شما تشخیصش میشناسید دیگه، نباید تجهیزش. پزشک پزشک خوب بدون تشخیص بده. من میگم خب تشخیص تا هر دوریا متأسفانه نمی‌کنه. معمول تو ایران اینجوریه. تشخیص کار سختی. تشخیص خوب نمیدن. تشخیص خوب بدم خیلی عالیه مثلا من خودم اینجوریام دکتر خواهم برام 3 تا جواب محمد جان مریض شده بود شبون دکتر رفتیم گفت بعد بسریش گفتم نه میشه دکتریم دومین دکتر سومین دکتر یه چهارم تا تماشا خوب شد ماشینمون خراب میشه تشخیص نمیتونم بدم مثلا من ظاهرا داشی یه دندش داشتم یعنی بودش خاصه ودامش میکنه کالی کوبون روغنش رو افتاده و موتور بیاد خونه ناراحت راحت افسرده خوشونه چی بخوام گذاشتم میگم کار نکردم گازی ندادیم لای باش ما رفتیم که شب قرار نبود صبح گفتند دوباره بشه ما کامل سالم روغن چیره روغن رو شارژ بود. روغن شارژ کرد درست شد تشخیص تشخیص روغن مثلا روغن خوبی نبوده یا ی وروغن اون حدش رسیده بود که دور خون نمی زد یا هرچی چه بالاخره تشخیص تو ایران می خواد پیش مکانیک بری بعد سجا بری دکتر می کنه بری بعد چرا چون تشخیص ها ضعیف تشخیص بده ترجیحاً بره تشخیص خوب باشه ترجیحاً خوبه یه فروشنده همینطور 70 درصد زمانش می‌ذاره روی تشخیص روی شناخت هفتاد درصد زمانش می‌ذاره روی شناخت مثلا این همانون یه حرف نمیزنم و یکی حرف بزنم با تحقیق علمی ثابت شده بهتون دارم میدنم یا پایان نامی دانشجوه هم بوده یعنی که از تحقیقات بهتنس مطمئن دارم تو فروشنده فروشنده A فروشنده بی فروشنده A، تا مشتری رو ببینه میگه قرارداد موضوع موضوع رو مطرم میکنه تخفیف قیمت سری موضوع رو کنه. میکنه پرچندی بی چی کنه میکنه؟ پرچندی بی اول میاد پشکیس میدن این ساعت سن کجا میشینه، کجا زندگی میکنه، سلیغش چیه، علاقه مندیش کجا کجاها رفته، با کیا کار کرده، کیا روی تحصیل میذارن، تصمیری برده کهیه، بودجش رو که تعمل میکنه، کی در واقع پول اصدی رو میده تبلیغ کننده کیه، کی دهان به روی تحصیل میذاره یا ارزان خدمه شما از کجا تقیم کرده، با چه قیمت تقیم کرده، از کجا ها بورده، با که بوده، که با این کار کردن، چه که برگشت داشته نداشته، وضعیت مالی، اعتباری، زمان خوب جلسه با این آقا کیه، درونگراس، برونگراس، بسری، سمعی، نمسی، اینا رو همه میشنه، آنالیز میکنه. بعد به جای جایی میرسه یک جلسه میذاره. جلسه تغالب به 67 درصد 67 درصد موفقیت از آن این فروشنده است ترجیحاً سیسو سیسو سیس 100 این فروشنده موفق است خیلی بالاست 67 باید می توشیم. قیمتی هم که تو بی میتونه بگیره میتونه بالاتر بگیره با آنالیزی کردن نستد به طرف اون یه قیمت هست... این حتی ما میتونم تا 70-75% این رو تحنید کردیم تا 75%, 75 محفظ تره تو کارش اینجا شما که قراردات میذاری امضا میشه اینجا باید بود دنبال پولت دنبال قرارداد دنبال کارت تا بالاخره به یه جای جرسی پول بتنیمید داریم؟ داریم. ما اصلا ما قبل از جلسه حتما تحلیل کنیم حتما حالا این گفتیم موفقیت فروشنده توی فروش خب؟ یه محفقت توی وصول داریم اصلا فروش به وصول متصله دیگه شما بفروشی نتی می بگیری که فروشی نتیم که میزونی پرسانت فروشندت ما که پول بیاد حساب داری ما حتی پرسانت وابسته وصول میکنیم اصلا اصلا فروش به وصول متصل باشه فروش که حصول نداشته باشه فروش نیست آمین رو بهتون میگم بعد حواست دادی رفته چرا من این همه دارم آنالیز می کنم الان تو بازه ها شما برید که مثلا تو بازار رو سنتی حالا که ولا پدر ما در کنم اما ما هاتون بازه رو هستم مثلا میخواست... مسئل مسئل بازار. بازار سنتی تو مسجد شاق و اینا این مسلم میخواه مسجد شاق مسجد شاق پو پام نارو بازه رو سنتی تو بازه چیت میخواهن بهت بدن می‌گن کی تا رو تعیین می‌کنه؟ اعتبارش رو. زنگ زنم به اون آقا فلانی رو شما تعیین می‌کنین من از چی گزارش بگیرم؟ دو سه نفر امور می‌گیرن که وصول می‌شن از چه چکر... چکر... ازش بگیرم ما. اینقدر بر شما این کاسب سنتی این نظیر بر شما حالا وصول چند درصد؟ وصول نه آقا وصول 89 درصد. 89 درصد این‌ها توی وصول موفقن. این چقدر توی وسم میمونه 11 11 11 اصلا اینا تو وسم ما فقط و صدبه وقتی من واقعا اینجا چک لیست شما دارین اینجا یا یا متدی وجود داره برای این کار چک لیست یا تستی وجود داره اینا نما میتونه مطالعه بکنم چک داریم تست نمیشه چون از مشکلی تست چک لیست است رو از خونه میگیریم که آقا مثلا اگه اینجوری رفتار کرد بعد این کار انجام میدید. این کار انجام میدیم، فاین کار انجام میدیم. نه نفهمیدم شاید مسنا خیلی خیلی وانست. خیلی یه آدمی که میره در مغازه طرف بعد خودش حس بکنه این آدم چه شخصیتی داره، برون گراس، است، گراس است. یه برای راهان شناسیه. راهان شناسیه و نه. اصلا نه، چیزی که دیارم گردن نمیتونه فروشه. نه که نه، نه. تو بیتنه میگم قبلا بیتنه موفق تر اصن دارم گرفت فروش چه محسوب کرد میخوره؟ اصلا برونگی رو بذارم فروش ماشین میخوره. دارم گرفت بذارم اصلا فروش چیزی رو شما میگن؟ صن نرم محسوبه. چون من آروم بیش نیت هوزیک بودی. انشالله خودتون وسط چند مثلا کام باشند تحلیلی کنند شام فردا که تعب من نه من برونگیم. برونگی هست یوز من خیلی آی خیلی زلیست آره شما راست کارو چون صافی کار میساز چون ویزیتوری می هم چی نمی‌فروختیم آها دیگه دیو آیم بالا است دیام تقریبا 80 خود آیم تقریبا 60 تا خوردی اساسی ندارن آها برون غذا پارازیت رو دلانم میرسم رو کمشم گفتم میگم میگم داون گیرها تو دلش کسی kesin اون عادت میکنه میشینن قسط میخورن دی کیو این که فونت تپشنده سی سی اصلا نشه که من اگه شما مراجعه می‌کردی هر چیزی این فرودی از تو می‌خاید. چیز اساس که شما راحت می‌تونی بفروشی قابل بعضیش کس که آی ندارم بله چون من آی دارم این چیزی من است. گفتم من دی آیم. اساسیم خیلی کم. هستم مثلا 10 و سیم کنم مثلا 50 دارم. دی این یک فرمول تیپ شناسیه، فرمول شخصیت شناسیه، فرمول تشخیص مدل رفتاریه از ما خیلی از مدیر این امتحان رو از کسیتون خواهد استفاده کنن، دلیه هم میگیرم دلی چون هستش سهش کنم توی دیسک هست هست هست، نا میتونیم درگیرون کنیم آره هست، خود میتونیم درگیرون کنیم پر بکنیم، آدما چهال رو هم یا دی هم یا آی یا, دی، یا آی یا آی یا اس یا سی. یا دی بالا دارن یا آی بالا دارن یا اس و یا سی مثلا آدمای دی برنیست آدمای آی اجتماعی و منطقی آدمای اس خیلی حساب دادی هم آدمای سی خیلی مححوظه کاره تاشته به سور بودا زن. بعد با این مدر رفته رو باید و با آدمایتون ارتباز کردن حتی موقع استخدام با باید خوانه خیلی این رو ر که شما آسان چه مدل رفته تو توی شرکت ها اون درنی دیا کمپانی شما نمیمونند یه سال رو یاد میگیره بری و خوش یه مغاز می ها خیلی به شما وفادار میمونند میمونند شکل شما سال، ده سال جاش نیست شما این رو خود میمونند این که یه این هست که ده ساید میشنید کارگاه مثل یک چجایی می اینو اینا کاربنده همون میگم کرده بایش؟ بگم پست داره می, می پس انجام می دهن دیگه انترنت هتا آنلاین هم هست پستشو انجام میدی؟ در می دهی یه جدل براتی یه یه جدل اون جدل شما داره اون موضوعی نطوری آدم می دهی چی هست؟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 ۸۹ درصد اینا تو وصول معفق ترد معفق تا این اینها هم بین ۶۷ تا ۸۵ درصد معفق تا با فروشنده هست الان مثلا چیزی که تو بازار موجوده ما اصلا خیلی امیان ویزیتوری میکنند همین شریعه ترجم مدارد هکسترن نمیدونند چی کار خب دیگه همشه حالا جلسه تا قرار دارم میدونم من پایانده ها این از هر صد تا جلسه ای که میذاره از هر تا جلسه تا شش تاش به قرارداد میرسه ولی این از هر تا جلسه ای که میذاره 100 تا جلسه که میذاره شش تاش می رسه. این تا می به قرارداد کجا تا میذاره 6 تا قرارداد میرسه این تا جلسه داره آره. یه کرد بود. هم داره پنجا ششتا قراره این یک تا زمی ششتا آره، یک تحلیق ما پایانده میکرد دانشتوان بودیم خدا بست همشه هست که موضوع کار کرد چیزایی دیگه هم در بردیم، چیزای جمعی هم بردیم کاری کردن بخم بخم این گلمی هست این تشکیزم، مثل دکتر دکتر بده و تجمیز بعد یک نه داره کشاندیم فوق تخصص باشه. زن، همونطوری پزشک. کلا پزشک عمومی و فوق تخصصیه. عمومی و متخصص یا فوق داره. متخصص یا فوق داره. متخصص پزشک متخصص پزشک عمومی که وقتی متخصصی می‌دهد، کشاندی فوق تخصص فوق متخصص. او فیلد کاری متخصص. عمومی فروش در همه زمینه‌هاه همه چی میفروشیم چی میفروشیم یعنی ولی مثلا ما فروشندین فقط فوق تخصص بر داره نزمی. یعنی فوق تخصص فروش مثلا سایت داره یه چیزی رو تا هل shaftه سوالی لازمه تا دست به تخصصی بده مثلا دیگه مثلا استخون خود کرده. ا تو بهپخش یکی دارم سی سال روغن میفروشه سی سال داره روغن مفتوشه خیلیه این هر چیزی یه نمیتونه دیگه ولی روغن یه تون روغن بشت بده تهران توی یک سال میکنه اینجوری میشناسنش میگم چون از میش... میشناسنش ازش میخرن یا نه ایشون متخصی خب میگم فروشنده روب یا زمان دیگه اونجوری بود در اینکه دیگه دیگه, دیگه, دیگه. آره، حرفه شده دیگه کار دیگه می‌توانده چرا روغنگ بوده و چه درماتی بپروشه یا من آدنه می‌شنم فوق هست فروش روب رو داره ویست یک سال داره این کار انجام. انجامه روب میدی دست می‌کنه توی روب میاره میفهم این رنگ غذا داره، رنگ داره، لعابش چقدر؟ حتی میفهم گوجهش کن گوجه ای کجاست؟ کدو داره چی داره؟ آره مثلا این گوجه مال دست گوجه که ذرن توی این گوجه مال است گوجه که که گوجه مثلا جوب آ آره حتی اصلا میگیر که مثلا گوجه دست چی داره که این با اون درست شده گوجه مثلا اس کاشمر چی داره که این درست شده؟ دقیان عنوان نیز میکنه آان میویل برش هم آره می باقید خصوصه این هم فروشنده هم دیر میشه نمیگیم این بده مگه پزشکومی اومی بده امید. اون جای خودش خوبه نم جای خودش پزشکومی خوبه اومی هم خود پزشک کار رو پستان این دیگه در با بار خودم این ترکونده که آستخون کرد که میخواه کس که سرما میخواه که بهش متخصص نمیونی بشه عمومی. بله دیگه نم نسخه های عمومی ها همه گیره مثلا اگه سرمان بخورم برن داروخننگی واقعا برنم مثلا بده بتونم خودم مطمئن درمان بکنم بیتونم. خود درمان ایمتونان میشه باشه. ولی فوقات خصص ولی بعد چی میشه؟ دو هفته بعد دوارو هم مریض میشم سه هفته بعد یه ماه بعد این همیشگی نیست ولی من سرمان خورم، میرم میشه فوقات خصص یک کاری کرده من دو ساله پیش این فوگت تخصصی رفتم برای سمون خوردن دو سال اون سمو نخورده بودم تازه الان اولین بار بعد از دو سال مریض شده یک کاری کرده رو تا دو سال بیمه شده این این فوگت تخصصی آزمایش خون ازم گرفت اینا هزار تا کاری کرد تا بالاخره ما رو این کرد این فوگت تخصصی هم فروشندگی مثل پزشکیه باید مهارت داشته باشه فروشنده میتونه انوزی پزشک در بیاره اگه کسی مثلا مایی صد میلیون در بیاره واقعا یه فروشنده هرفهی باشه هم یک صد یه هرفهی باشه فوق فرد فروش سوله است این کار محرک هست فقط هر کاری کرده برای این کار رو شد من میگم. چیز خاصی نیستش این همجرد که یه فرد می مثلا تخصص میکنه بزرشی میکنه و تخصص میشه اگه علاقه عشقی هم کارش شمشه به کارش رشه بشه، به هم راحتی در از یه سال، دو سال میتونه به دست بیاره؟ بله نه، بلکه نه چون مثلا، که خودتون من دیدم همون موطید عشقش هم به کارم اونست خیلی راحت، الان این طریقه باید از اون میدید چیزی نداره به نظر من؟ نه، الان هم هست، الان داره شبشی داشته باشه میتونی کاره انجامید، بهتری اون صنعت بشی، بترین فرد اون جامعه بشی، بترین فرد اون حرفه بشی ولی اینمایت ارخ داشته باشی که صحیح کبلی چار صبح هم میدارش کارتا انجام بدی دیردخت هم کشد پکی من علاقه به این کار دارم اینمایت ارخ دارم که، اشک به این کار دارم که انجامش بدم باید دکتر چی باشه ؟ یک پروشنده دکتر اینا باشه ای باید دکتر بازار باشه بازار خورده باشه ببینم تو بازار چی میشه کجا میره این بازار اخر این بازار کجاست فرآ چه تکنولوژی غربی چه تفاوت داره لوخته دکترشون دکتر نیاز منم نیازه های... نیازهای مخفی مشتری عقده ها نیازهای مخفی ای های مشتری ببینید چی عقده است مشتری اون کارشو انجام بده چی برای مشتری زجر آور تو اون سرویس رو بهش بده. تاوی ادیت دکتر نیازم. دکتر از ساختمان یعنی چی؟ یعنی میتونه با همه مصافهن خوب بشه، مسجنس خوب بشه، جسکی میخواد بشه. دکتر ارتباطات ثوابی که یعنی با همه میتونه تطابق کنه. نمیگه با یه نفر فقط هست نه. مثلا فرشنده صفان کردم هفته اول گفته من با فلان نمیتونم کارو کنم. که تا من باشم من میامش بینا. هفته دومو من با خوانیم که آم کار میکنم. هر سهینال حتی میام باشم میامش بینا وقت پر. هفته سومو مدام باز که من نمیفهمد که زنی. بله پایین دست آبتری. تا شد اولین وظیفه خوشامد چیه؟ با همه نه این طرف چون از من نمیتونم، چون چادریه من نمیتونم، چون بیهجابه نمیتونم، چون از سبیه نمیتونم چون پیره نمیتونم چون جوان با همه یعنی این قابلیت، این قابلیت به فرشنگی مقابلیت چی؟ الیکسیبیلیتی این احتاف قذیری باشید یعنی احتاف اول میشه که یک فرشنگ است احتباطاتی با همه، با همه نوع مشتری ارتباط با همه، این یه دوشته، دوشته بکنه با همه چطور بعد بتونه را جذب بکنه بتونه همه تاثیر بذاره من که یه تاثیر میذاره یه با نمیتاثیره و یه کار میکنه ما یه چیز کار میکنه کسی که مثل خودشان میتونه کار کنه کسی که مست میتونه کار کنه این یعنی خوشایند نیست تو چطور میتونه کار خاطر وقتی اون متوجه میشه یعنی جدی ما مون دقیقا کاری فروشندگی رو باید خیلی باه دارم این چقدر فروشنده باید محارت بشتره هرفتی باشه دکتر باشه تو کار خودش دکتر باشد باشه تو کار خودش این دکتر ای که پرونده داره برای خودش این باید, بر باشه. باید داره برای خودش باشه یعنی باید پرونده تشکیمی داره برای هر مشکش یک ایک یک پرونده مجد. پزشکی داشته باشه برای خودش این رو داشته میمونن کاری که انجام میده برای هر مشتری پرونده درست این مشتری ویژگیه هاش ویژگیه های شخصیتی رفتاری کاری همه باید اینجا بکنه پرونده ی داشته باشه برای کارش، برای هر مشتری پرونده تشکیل بده مشايه صالحه صالحه ده اونجا ها انواع مشتری کم یا چه نسخه داره کم هر سایز فریق دار هم نیاد داشت کنم من مثلا از حدیث های آیه های شده خودم یک دارد خیلی ساده هست؟ شده یه این بعدی این حدیث ها حدیثمون یه کیچتون رفت تفسیرش هم بکنید یک فیلم داره اصلا همین میگم این ساختار خودمون کل ایران میگه این همچین مدلی پیدا نمیکنید دکتر بهتون میگم و نیازی به ندارم کل ایران میگه این پیدا نمیکنید اهمال نشه من کردم هر مشتری یه داره اینو یعنی دکتر یعنی که امومی که ایچی، هنوز پرستاری، چیزی رو پرستاری در فهم کنم اصلا اگه نیداری که جازم؟ اینو بردی، اینو مطمئن نمیداری بودی اصلا؟ اینو براتون، های همون فروش براتو کداشتم فروش نیست؟ اصلا میشه یه توی که بابا داری که آقا شما دارین آقا شما میشه یه استراحت 5 دقیقه میشه عطرش هست